شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید با خوشحالی و سرفرازی به اطلاع میرسامیم هوای امروز سیزده دی ماه 1394 در اکثر نقاط کشور پاک بوده قابل تنفس میباشد پس بشه ای دارنده های های مقاوم و ضد دود ای قهرمانان عرصه تنفس و ای ریزگرد ستیزن این هوای پاکیزه اکنون حق مسلم شماست تا به ریه های نشان دهید که هوای پاکیزه نیز وجود دارد اینک نفس بکشید و آنودگی دیروز و دیروزها را فراموش کنید که از فردا و فرداها کسی خبر ندارد این پیروزی بر یک هاویه که نرسه تنفس سرب و و ریزگرد مبارک با مبارک با فرشید. از دبی باتون با تماس میگیرم هوا اینجا بارونیه بعد از مدت ها داره بارون میاد و هوا بسیار بسیار عالی و جای همه به به به به سلام علیکم خیلی عالی همه جا عالی بسیار عالی کلن آسمون انگار این روزا با همه مهربون تر شده خانم آقایون توی تهران هم خب این روزا هوا مثل آینه صافه و اعتمالا قله دماوند از وسط اوتوبان کلاج هم قابل رویت باشه و مردم دارن یه نفسی میکشن بالاخره یه صحبت ها و ابراز احساسات مردم تهران در مورد تمیز شدن هوای شهر روی بخشیش رو گوش کنی عالیه دیگه بهتر از این نمیشه بذاره هوا سولی آمون بره هوای ساله دو سه روزه پیش کوها دیده نمیشدن قابل دوستیب نیست. نمیشه با کلام یه شوق تو مردم در میده شده یه فکر نمیجا یعزنی گمشه مالی جایی بله فقط البته تهران نبود ظاهرن یعزد و شهرهای دیگه هم بود این بادوارونایی که باعث کم شدنه حالا دیگه هوا توی بسیاری از مناطق ایران شده به خاطر یه توده هوایی سرد و بارونیه که بیشتر روی ترکیه و بخشایی از شمال غرب ایران مستقر شده ولی شدتش به قدری بوده که بالاخره روی آب و هوای کل ایران تأثیر گذاشته و توی روزهای آینده ما همچنان شاید سردتر شدن هوا و افزایش بارندگی به شکل بارون و برف و همطور باتای شدید توی مناطق جنوبی و مرکزی هستیم. و این یعنی فعلا تای مدتی خبری از آلودگی هوا نخواهد بود و ساکنین شهرهای بزرگ میتونن با خیال راحت نفس بکشن و از هوای تمیز لذت ببرن حالشو ببرین اما همونطوری که میدونین ما این هفته داریم در مورد پدیده خانمان برنداز و چندشطور آلودگی کلن آلودگی با هم صحبت کنیم دیروز در مورد آلودگی هوای مقدار صحبت کردیم که خب از دیروزم صبح طانا هوا و هوای شهرای ایران کمی بهتر شده امروز می‌خوایم بریم سراغ آلودگی در محیط زیست و محیط زندگیمون و تکلیف خودمون آقا با آلایندگان محترم اماکن و معابر و کوه‌ها بودا هتا و, و دریاها و اینا روشن کنیم حال درسته که بعضی ها از سر صبح که پا میشن میگن نمی‌دونم چه می‌دونم مملکت قانون درستی حسابی نداره هر دم بیل فلان فلان و اینا ولی آقا آقا مثلا ناسلامتی خودمون که داریم توی خیابونای محل زندگیمون توی کشور خودمون اصلا تو این دنیا داریم زندگی می‌کنیم بازم میرسیم به این جمله معروف که نکنید نکنیم نکنند حیفه به خدا این زمین و لاقل همینجوری که تحویل گرفتیمش تحویل نسل بعدی بدیم دیگه این های پلاستیکی رو همینجوری زرد و زرد نگیرین نگیریم نگیرند و ول نکنید ول نکنیم ول نکنند توی این محیط زیست اینا دو هزار سالم بمونن تجزیه نمیشن حالا هی ما بگیم هی خودمونم دوباره گوش ندیم. فرشید جان برنامه امروزتون آلودگی علیکم. هوا بود خواستم منم یه بقید. ارادتی بکنم و بگم که خیلی آلودتم خیلی آلودتونیم خیلی دوستتون داریم مفرس سال جدید میلادی هم مبارک باشه نوکرت یونس از تبریز چاکریم یونس جان از تبریز تا باشه از این آلودگی ها باش آقا بهترین آلودگیه از اون آلودگی هاست که میچسبه به آدم مرسی از تماست و ما دوستان عزیزان خانمها ها آقایون رو محکم ببندین که وزیر نیرو شروع کردن به درد دل کردن در مورد دخل و خرج وزارت نیرو و اینکه مبالغ قبوز دریافتی برق شفاف خزینه ها رو نمیده و اینا گوش کنی خزینه تپیل انرژی در نیروگاه ها انتقال انرژی به ازای هر کیلووات ساعت 100 تومان بوده در حالی که به ازای هر کیلووات ساعت از مصرف کنندگان برق 6 تومان دریافت شده از این 60 تومنم 10 تومنش رو به ذات نیرو پرداخت کرده برای های نقدی که به مردم داده میشه که دست به ذات رسیده حدود 50 تومان بوده برای یک بونگاه اقتصادی که از دولت کمک نمیگیره و صرفاً باعث از محل های خودش خودش رو اداره بکنه تحمل این شرایط بسیار سخت خواهد بود بله دیگه اینجوری که بوش میاد و جناب وزیر دارن مقدمه چینی میکنن قبضهای برق به زودی قرار دو برابر بیاد که دخل و خرج آقایون هم با هم بخونه دیگه هر چی میکشیم یعنی از دست این یارانه هاست از وقتی که این یارانه ها رو نقدی کردند تا سه برابرش عجیب مردم بیرون نکشن بی خیال نمیشن که همین دیگه خواستیم خودتون آماده کنیم که یهو یه با دیدن غبز برق جدید برق از کلتون نپره بعد من بهت افتخار می کنم تو واقعا با استعداد بی‌نظیری تمام مدت که برنامه رو گوش میدم فقط میگم قربونش برم خدای این بچه رو حفظش بکن مرسی قربون خودتون دمتون گرم که بابا هست لطف دارید خب چه خبره خوبین همگی سلامتیین شهرام خوبه سامی خوبه همه حالشون خوبه خدا رو شکر ما هم خوبیم مگه میشه بد باشیم خصوصا که امروز تولد آقا جلال گل گلابه و به به و به به و وحوی جلوی جلوی به ماچ بده به ماچ بده الکی دست تو ماچ نکن به ماچ بده به ماچ بده اصلا ما آها آها آها آخه به به تولدت مبارک. مداد تولد 120 سالگیت خودم میام وسط برقصم، رقص چاوی بکنم. نه شما مرسی، ممنون. خیلی مبارک باشه. جلال ماشون. تو از همون بچگی هم که دنیا اومدی همینقدر بامزه بودی یا بعدن با. این همه فکر بامزه اومد به ذهنت؟ راپد کرد. اصولا من آدم بامزه نیستم، اصلا... زندگی عادیه، اینا اصلاً آدم بامزه نیستم. و اصولا رو. اصولا طنز نویسا اینجوریان، طنزاشونو سعی میکنم بریزن توی چیزایی که می‌نویسن. یه هی هستی الکی علکی نگو دیگه بابا بایم یه هست علکی میگه خالی میبنده در زندگی عادی حالا ممکنه همیشه هر روز هر ثانیه نباشه ولی دیگه یه وقتایی بلقا تنزای ریزی میاد یه جاهایی خیلی ریز میاد میشه الان هم ریز بیای برای ما نه دیگه ما تو کار دروش نیم روز تولد دیگه خب دیگه ببینی روز تولد شهرام سامی برو گلهی میخوام ای گله ای هم می خوام بکنم حالا اینجا من میخوام از این برادرایی که حمله کردم به سفرات عربستان یه گله بکنم به خاطری که با این کار خبرسازی کردن همه رسانه ها دارن درباره اونها حرف می تولد منو تحت تاثیر قرار دادن رسمی یعنی الان هیچ رسانه ای درباره تولد من سو همه دارن در مورد اینا صحبت بابا اخلاقم اصلا این همه روز داره سال 365 روز گذشته شب تولدمو بیا بعد میگه باا مزه نیست ببین این جوریه واقعا واقعا من نمیفهمم. رسانه های عزیز دوستان عزیز رسانه های دیگه پردازیم به مسئله بود. اول. راست میگه. چلچلیتون مبارک بشه. برم شما برم. نه, نه چرا؟ 18 سا... سا... ساله میخوره بهش. ولی حالا 22. <تصفح> درست میشه ایشون. خب چی بریم برای جد... جد... تولد جلال؟ تابلو دیگه معلومه چی بریم دیگه. اخ اومد. اینا صداش شما به دیگه به به به به به به به به به به به به به به به به به به به همه به به به به به به به به به به به به به به بیا به هموم... به بیا به به به بیا به بیا بیا بیا به به به به به به به به به به به به به خبر نداری دل داری به رود دل ما فارسی مگه سر خلد دل داری دل ما فارسی حیف کاری یار خوشمزه بسگی و خودت ببر حیف کاری یار خوشمزه نکون دیگه را گیری خبر مگه دل نداری سر به سرم می‌زاری مگه تو دل نداری سر به سرم می‌زاری اینجا شبه ببین اینجا شبه الان بگی آها آها آها آها آها لحظه سب کن چل لحظه سب کن دست تو به من بده قب و فراموش کن پری پیکری ببه یار خوشمزدری ببه شراعت حال من آخ جونو حرف کریار خوش مزار بگیر و خودت ببر حرف کریار خوش مزار نکنه بگیر نگری خبر ماجد دل نداری دل دل مبهم میزدی ماجد دل نداری دل دل مبهم کریار خوش مزار نستم بگیر و خودت ببر حرف کریار خوش مزار نکنه بگیر مگه میگم دل نداری سر به سرم میذاری مگه میگم دل نداری سر به سرم میذاری من واقعا شرمندم که بعد از تولد جلال باید بریم سراغ آلودگی <تصفيق> هم خبرها خیلی جال جالب نیست میزه تولده جلال هم موضوعمون آلودگی محیط زیسته آقا من واقعا معذرت میخوام وقتی جنگل ها و دشت ها هم از دست ما پا به فرار می شماره 959. ای کسانی که آلودگی آورده اید بدانید و آگاه باشید که با این آلودگی هایی که از خود در میکنید روزی آنقدر همه جا را آلوده خواهید کرد که خودتان هم در فراغ جنگل ها و دشت ها و دریاچههایی که آنها را آلوده کردید و خشکاندید، آهنگ سوزناک دشتی خواهید خواند، لاکن آن زمان دیگر دیر است و شما آن وقت از به شدت در آلودگی فرو رفتگانید. امزا خودشان در تولید آلودگی حرفه ای در تلاش برای ترک عادات ساز به تخت بسته شده های رادیو پس فر دا آها آها آها آها, آها. خانم اون دختر خانم آقا بسر من نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه ولی یه وقت میبینیم مثلا دو سه خانواده با هم رفتن پیکنیک توی منطقه خوش با آب و هوا و سرسبز و بسات کباب و نمیدونم توپ و والیبال و فوتبال و تاب و اینا رو را, هم را چه چجور؟ این یعنی درختای اون منطقه نمیدونم چه هیزمو تری فروختن به اینا که عزیزان سعی می‌کنن تمام انتقام‌های تاریخ زندگیشون از این درختا بگیرن. تاب می‌بندن به دو تا درخت از این ور به اون ور دو, دو درخت نحیف بیچاره. ماشاءالله وزنا و هیکل‌ها همه در حد آقای رضازاده، همچی ولو می‌شن رو تابه انگار تخت پادشاهیه. درخت بیچاره هم هيكج میشه، هيكج میشه، خم میشه، ترک برمی‌داره تا این دوستان کمی بهشون خوش بگذره. این عزیز بعدم که بساط کباب را میفته و دود و دم و منقل و اینا رو را رامیندازن که خب اینا اوکی مونتا یه رسم قدیم ایرانی هست شما بعد آتشی که به پا کردی خاموش کردنش دیگه بس دست باد و بارون و طبیعت دیگه خودش خاموش شد دیگه یعنی کاری نداری به خاموش کردنش انگار نه انگار که ممکنه آتش این و وجودی که داریم میزنیم به بدن اگه درست خاموش نشه بعدش میتونی یه جنگل آقا خانم نابود کنه یاباتر از اون ببینیم مثلا جوونای فامیل بعد که بساط پیک نیک داره جمع میشه خب آشغالا رو بنده های خدا خیلی شیک و درست جمع میکنن امیرزن تو نایلون جدا میکنن و اینا به خودشون ببرن یه جایی که مثلا سطل آشغال از بریزنش بره بعد بعضی بعضی از بزرگترا همجینی بچه ها رو مسخره میکنن بیچاره اوه میگن آی جوونی آی جوونی انگاه بچه داره چیکار میکنه بعدم که ازشون میپرسی چرا اینجوری میکنین چرا این حرفا رو میزنین میگم بابا آخه اینا زباله از همش میده تو دل طبیعت دیگه آقا بابا خانوم آقا طبیعت مگه دلش چقدر جا داره؟ بعدم یه عالمه از این زبالجات غیر قابل بازیاف میرن تو دل طبیعت میمونن سالهای سال صدها سال،, سال هزاران سال میمونن تجزیه نمیشن که پدر طبیعت و صاب طبیعت هم در میارن؟ ای بابا کیه که کی گوش بده؟ کیه که کی گوش بده؟ چند وقت پیش سیمین دوستم زنی زد که میشه تو امروز بری آیدین رو از مدرسه بگیری ببری خونه آیدین پسر هفت سالشه گفتم آره بعد از وقتی بچه رو تحویل گرفتم از مدرسه سایرا با هم رفتیم یه سوپری خرید داشتم. مغازداری که شروع کرد بریختن خریدات چند تا کیسه پلاستیکی صدای آیدین در اومد که آقا چند لحظه سب کن من بهتون ساک دستی بدم اینا رو بریزین توش بعدم یه نگاه عاقلند در به من انداخت خیلی که یعنی شما همراه خودت ساک نمیاری وقت خرید خاله شرمین تام یعنی تو همیشه یه ساکی تو کیف مدرسه داری؟ گفت بله، اصلا تو مدرسه یادمون دادن. شما می‌دونید تفکیک زباله چیه؟ بعدم یک بند تا برسیم خونه از هایی که تو طبیعت تجزیه نمیشن و محیط زیست سوال ده می‌کنن حرف زد. وقتی رسیدیم یاب می به پاکتی دادم دستش که مشغول خوردن بشه انقدر حرف نزنه. آبمیوهی که تموم شد دیدم داره پاکتشو می‌شوره. بعدم صدا زدی که خاله شما آشغال بازیافتیاتونو کجا میندازین؟ روم نشد بگم از این قیرتی بازی‌ها نداریم یکی صدا دادم دستش گفتم بندازین تو سلام خسته نباشید. گفتی آلودگیو کردی کبابم. چند ماه قبل با خانواده رای شمال شدیم برای تفریح رفتیم توی جنگل اطراف نور. فقط همینو بگم قبل از نشستن چهار تا کیسه بزرگ زباله از طبیعت جمع کردیم. از شیشه نوشابه و بشقاب شکسته و قوطی کنسرو گرفته تا سیم و سنجاق و سرنگ تزریق مواد. خواهش میکنم آقای منافی به مردم بگید مسئول محیط زیست ما فقط دولت نیست، ملت هم هستند. با تشکر، سمیه از مشهد. این ایمیل رو محسن تو فیسبوک گفته آلودگی هم یکی دیگه از دستیسه دشمنه میخوان با آلوده کردن هوا بچه های ما خنگ بشن تا بتونن تهاجم فرهنگیشون رو بیشتر فروب کنن مال. خنگ بشن که به زرر دشمنه که محسن جان چون همه میرن در ولایت ها اینجور چیزا میشن دیگه دشمن عمرم بتونه نفوز کنه شاید این آلودگی ها دستیسی خود حکومت باشه ها باور کن محمد محسن پورم گفته توی اینستاگرام گفته من شخصا فقط وقتی میرم پیکنیک من شخصا فقط وقتی میرم پیک با کباب زدن آلودگی تولید میکنم و دیگه هیچ آلودگی تولید نمیکنم محمدشونم گفته من آقا کباب زدن که آلودگی محسوب نمیشه که خب الانم گفتیم که البته بعد از خوردنش کلا پاکسازی محل رو اگه به طبیعت واگذار نکنین همین الان راجع صحبت کردیم ولی کباب که دود میره تو هوا تمام میشه میره والله دمشوما گرم نوش تو کباب و مرضیه خانم اتهشامی هم توی اینستاگرام گفتن که حدود چهارده سال هیچ زباله‌ای تو خیابون نریختم و حدود یک سال تمام تلاشمو کردم که نایلون کمتر مصرف کنم همیشه با اینکه یه مسخره میکنن در تلاشم دیگران رو تشویق به نریختن زباله و کمتر مصرف کردن نایلون کنم بول کلا بول یاد بگیرین خانم مرضیه اتهشامی کسی که چهارده سال زباله نریخته تو خیابون و یک سال که نایلون و پلاستیکی کمتری مصرف میکنه البته بگم ما یک سوالی داشتیم سوالمون این بود که از هایی که تولید کردین بگین ولی خب به حال بعضی هم تولید نکردن دیگه ها هم درد نکنه یه بار دیگه من سوال رو میگم این هفته لطفاً بهمون به صادقانه و بی دروایسی به چند تا از اون آلودگیهای گلدروشتی که توی زندگی ایجاد کردین و میکنین خودتون با زبون خوش اعتراف کنین فقط برای خودتون میگیم میخوایم گناههاتون سبک شه بار گناههاتون سبک شه همین منتظریم سلام سلام تا 15 سال پیش تا 15 نج سالمون بشه بلاب برود اون مدیوار داشتیم کافی <تصفح> بود شب یه با چند پیاله پیاده چای چیزی میخوردیم صبح به صبح این تشک ماین بچم میرفت بالای نرده ها با آدم میخورد بهش این بوی اوره <تصفح> <تصفح> کلد محل برمی یه آرودگی بستی هم به قول تو ایجاد می اون صحنه دیدن نبرره ارگوونه همهگی بای باشه آقا کی فکریش میکردی یه قاچ هندونه بتونه اینقدر آلودگی ایجاد کنه؟ یعنی با یه تیپ تا جون زدی یا وقتی بچه بودی هم تو شکر آلوده میکردی هم آلودگی هوا ایجاد میکردی هم آلودگی بسری بر در همسایه دمت گرفت این هم یه شدی دیگه علما چقدر تخلیه شدی الان احساس نمیکردی ردوشه تیم بار بانگون باراگونه سبکتر شده بار کلا شما بگین بهمون به از آلودگی هایی که ایجاد کردی و اما امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون آیو ایسیاش بیت بیت از اله امیرخان و آترین بانو از کرج رشت کرج رشت بلاخره کرج رشت علی رزا از رزایی پاریس ایران کامیار و اه... گلاله از سوئد میلاد خان از اسفهان روحام یازده ساله تهران سرم درد میکنه از وسط آلودگی ارسلان پسر ارغوان و نوید ده ساله از تهران پارمین و پارمیدو از کرج افشین فخر شیخل اسلامی ایران کردستان سنندج کامی امکی از امیراباد سیتی سروش از شاهین شهر هادی از انگلیس فرشته و احمد همیشگی از گوتنبرگ امین از ساری مریم جونم از هفتولت آزاد رضا از شهر ری رضا فضلی از هامبورگ ام آر آی از گینه بی صاحب متشکرم. شما میتونید با ما در تماس باشید و بهمون به رجبه سوال این هفته بگید و بگید که میونتون با آلودگی چطوره و از اون آلودگی های گلدرشتی که تو زندگی ایجاد کردید و میکنید و ان دیگه نخواهید کرد برامون بگید و اعتراف کنید پس پسوردات رادیو فردا.com ایمیل ماست 20420 6874150 20420 73359555 شماره های اس ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساند کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون کامنت بذارید و اپلیکیشن رادیو پسفرده رو میتونید روی موبایل هاتون داشته باشید و با ما در ارتباط باشید و به کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید همینطور با تلفن های پیامگیر برنامه رادیو پسفرده میتونید در تماس باشید دو سف چار بیست بیست و دو یازده بیست و چهار س 7939 کی میتونه من کی میتونه تو قلب من ما میشه مثل تو پیدا اما بحث آلودگی اتفاقا دیدیم استاد بزرگ حداد آدل با توجه به بحث آلودگی هوا که در روزهای گذشتهم خیلی بحثش داغ بود روح حساسشون آزرده شده و یه شعر برای آلودگی هوا گفتن این شعر با این به رو میشه که باران ببار بر من و شهر و دیار من باران ببار بر من و باغ و بهار من باران بشوی دود و دم از آسمان شهر باران ببر قبارغم از روزگاور من بحبه. واقعا اینجا جای معزمله خیلی خالیه که بیاد بگه آفرین آفرین بله اما شعره ایشون همجوری پیش میره تا میرسم به اونجا که میگن است قسمت این بخت واژگون آلودگی است دغدغه دق و خارخار من ما والا نفهمه منظورشون چی بود دقیقا از خارخار خار. خار مقیلان خار سهراز خاری که یک کفه خار مادره نفهمیدیم دقیقا اینو فکر کنم ای معظم له این قسمت شعره ایشونو میشنیدن حتما عملشون این بود مثلا حتما نهاتش کنید بله منطور نقطه خیلی بامزه و اوج شعره استاد حداد اونجا بود که یک شلیک کردن به سمت دولت شیخ حسن روحانی و فرمودن ای باد اگر نیایی و باران نیاوری بر باد میرود هنر و ابتکار من ظاهرن اینجا خب کنایه از ابتکار یعنی همین خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور بوده خیلی هم عالی کلاً نظام مقدس ما که نظامیه بنا شده بر شعر حالا اینم روش دیگه ها منتها سوالی که برای آدم پیش میاد اینه که استاد حداد حد اون موقع که عثمان محمود رئیس جمهور محبوب آقاشون سر کار بودن از این شیرین سخنی‌ها چرا نمی‌کردن براشون فکر کنم دلیلش این باشه که عصم محمود از قبل اینجوری واکسنش زده بود به ایشونا یه دوبیتی هم آقای حداد من هدیه بکنم از خودم تمامه تا که از خال رخ یار خودم مسهورم من از این دایره جن و ملک بیرونم به رقیبان قدهی تا همه هوشیار شوند خود ببینند چه هم عاقل و هم مجنونم بله خلاصه اینجوری است دیگه تو سیاست هم باید واکسنا رو زودتر بزنی تا دوچار شعر حداد و قور آقا نشی دیگه البته بگم باید اوسا باشی تا این چیزا رو بفهمی کار هر کسی نیست فریورز غریب سلام چه خبر؟ سلام سلام به همگی فرشی جان اجازه بده منم تولید جلال رو تبریک بگم از این راه دور رو به وکالت بدم که بعد از برنامه یا همین تو برنامه طرف من ببوسید. ای بابا خیلی ها به من وکالت دادن خیلی کار سختیه اینطوری. من بعد همش ببوسم بهش اینطوری. می‌دونید خوش نوندم زیاد داریم اونها میگن بعد من هی بعد ببوسم. چش چش چش چش. خوشنام. مرسی از بازداشت و زندانی شدن سوشال مکانی دروازه‌بان تیم پرسپولیس شروع میکنه نفس جان. عجب چه کرده کسی رو کشته از مالیات فرار کرده چیزی سرقت کرده خدا نکرد. چی شده؟ نفس نه کاش یکی از اینا بود چند تا عکس خصوصیش تو فضای مجازی منتشر شده بوده امروز رفته دادگاه آره توزی بده که بازداشتش کردن اوه احتمالاً بعد توزی داده که بازداشت شده دیگه حالا البته شایعه زیاده درباره هاشیه های این آقای مکانی ولی حالا باید ببینیم چی میشه خبر بعدی چیه یه خبر بود فرشید کمی به موضوع برنامه نزدیک آلودگی در ورزشگاه اما از جنس آلودگی توهین و ناسزا به این حرفای حنیف عمران زاده بازیکن استقلال گوش بدین که چند روز پیش بعد از بازی با تیم ملوان تو ورزشگاه بندر انزلی گفته. بشنوید. 90 دقیقه شوهر دادن، اونم چه شوهر خوشگلی دادن حالا دیگه همه میگن یه خورده آن 90 دقیقه خورده میشه. اینبار صدا میزدن اون وقت جواب میدادن. چه که ما خورم زمین، من توپو گرفتم، حالا بعدش چرا 90 دقیقه فوش میدین؟ آقا اومدین اینجا فوتبال نمیکنین یا اومدین فوش بدین؟ آقا ما خودم نفرمیدان. نه اینکه یه بار هر سالی که میام اینجوری میخورم. آجا. آره فرشید انقدر این فوش و توهین ها آنچنانی بود که اگه میخواستیم قسمتیشو رو پخش کنیم همش باید بیب بی پخش میکنیم بله همش بعد بیب میذاشتیم ولی رو زیادم تو این چند سال خیلی شاهد این توهین ها بودیم توی ورزشگاه مختلف و خیلی هم خوب صحبت از فرهنگ و فرهنگ سازی میکردن مسئولان چی شد پس؟ والا چی بگم فرشید فقط تنها کاری که تو این چند سال من دیدم انجام میشه سریع و خوب البته میکروفون ورزشکار ازشکارها رو قطع میکنن برای درهای پخش سیما که صدای پوشا از تلویزیون پخش نشه. خب اینم خودش کلی کار فرهنگیه دیگه فریبورز یه جوری به با... حال تلاششون رو میکنن که کار فرهنگی بکنه ممنونم ازت فریبورز عزیز باید خدافزی میکنیم تا فردا خدا نگهدار تا فردا. ماشین مشتیم دلی ارزونو بیم و آسیلی ماشین مشتیم دلی نبух داره نه تن دلی. آبجی میوند چلون همدزای فوتبال دوگان رو بیرون میزنم میوند. اینا مزیج چی میگه ابزی سردت شد شیشن رو زو چی شده پوست پورتغال رو خب کنم ابزی نمیتونم بخورمشون که پوست پورتغاله دیگه باید بریزی دور دیگه زونم پاکیزگی شهر ای بابا آبزی تو این مملکت میلیارد میلیارد میخورن شما تی گیر دادی به پوست پورتغال ما برن زلون دوزدارو بگیرن خور چی؟ باز میگه دزدی سرپیم به این حرفا رو را شما خوار مای و حتما تحصیلات معضیلاتتم بالااس از این حرفها از این کلاس و ها میذاری ولی چی بدون که تو اون اصل ماذ درست نشه ماتی درست نمیشیم. اونایی که دسته کارن درست کار کنند دیگه ما پوستپتغالمونو نمیریزیم اون ما بعدا پوستپتغال و اینا چه میرهتی اینطرخه می دوباره میره تو زمین ممیل میشه پرتغاال دیگه <تصفيق> والا. تم وقتی دیدیم این دو وسط اوتوبان چی؟ یه درخت پرتغال سبس شده اسمشو گذاشتن درخت دشتی <تصفح> وال خود کفایی یعنی هم این دیگه زای پرتغال تامسون میگن پرتقال دشتی <تصفح> زا؟ خوب؟ بله بب... ببین عبزی اینا همش چیه؟ اینا همش حرفه ولی چی؟ میده؟ ببین آخه ما که تا اصلش درست نشه این چیزا تو چتمون نمیره که آخه نوکره تم الان هم دلتون نخواد؟ همین شما هم این حرفا رو زدی ولی میخوام چی نارنگیرم پوست بکنم و دیگه پوست تی جونم بدم شما پوست بکنی زحمت آخ سر من بلدم خود خودم پشت پرمون بلدم و همیشه همینزا باشه دیگه بفرمو بفرمو آبزی مشکلات مملکت عبضی اینا نیست یعنی باستی از اصل کار درست بشه دیگه پوست کندی چه سری با دست درد نکنه آبزی تا رو پوستارو میریزی تو کیفت بابا تورو رو آبزی شرمنده و نکن دیگه بابا من خودم میریزم بره دیگه هی بابا یه پر خودت میزدی دیگه بزن شیرینو دستت درست به به چه اطریم اینا آبزی من معذب شدم شما رو ریختی تو کیفت الان خیلی زایه شده عذبو باشه دیگه اصلا شما خواهر ما شما بردی دیگه نمیتگر دیگه چی دشتی میشه مشتی به خاطر شما هم که شده چی ما اون اصلا تی میتپونیم تو حلق خودمون تا برسیم به صدل آشکال <تصفيق> میخندی شما ما دیگه چی کنیم دیگه باشدم شما گن دشتی مشتی در خدمت شماست اینجا گفتی؟ ها مونده هنوز بگازیم بریم که دیر شد دیگه ماج خوش ما همه جواب نگاهی با سلام بیستوی کسی یک شنبه شب را ضمن ابراز تحصیف از توقیف چند باری روزنامه بهار در تهران با مروری بر سرخط مهمترین خبرخوفی امروز و امشب آغاز می نماویم از نظر معاون شورای نگهبان مبنی بر اینکه در گرفتن آزمون از ثبت نام کنندگان برای انتخابات خبرگان استثنان قائل نمیشویم. و پیشبینی کارشناسان که خب دیگه الان توی آزمونشون از کاندیده وابسته به هاشمی اطمالا سایز کفش پدر جد آقا رو هم میپرسن تایید ابتلای 33 نفر به آنفولانزا در قوم و ادامه انتظارها برای اینکه وزیر بهداشت بیاد آنفولانزایی بودن اینا رو هم تکذیب و رسانه ها رو به عنوان عامل این آنفولانزا اعلام کنه و ارائه پیشنهاد شهرداری تهران برای انتقابل فرودگاه مهراباد به خارج از شهر از یک سو و همچنین ارائه طرحی برای احداث مترو برای این فرودگاه و سوال فعالان گیج گیجگیجه که آیا سردار غالیباف خودش حالش بده یا حال ما رو خیلی بد فرض کرده؟ مهمترین عناوین خبری صابت گذشته را شامل می شدند اینک مشروح خبرها با هم بلبل با سلام، برنامه گزارش های رسیده چهل نفر از حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران دستگیر شدند، این در است که رئیس پلیس تهران از تظاهر کنندگان خواسته است تا اعتراض خود به ادام روحانی شیعه عربستانی را به صورت قانونی پیگیر باشند همچنین گزارش ها حاکی از این است که مقامات عربستان از حمله کنندگان ایرانی به سفارت عربستان در تهران و مرشد تشکر و قدردانی و عمل آوردند چرا که اقدام جالب این مترزین باعث شده است همه ی دنیا به روی محکوم کردن اعدام های عربستان در حال حاضر مشغول محکوم کردن حمله معترزین ایرانی به سفارت این کشور در ایران باشند آنان از این رویداد به عنوان یک پیروزی بزرگ برای پادشاهی عربستان یاد کردند پایان مرشور اخبار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 بله همکار گرامی یکی از استفاقات جالبی ته اینجا افتادیم این بود که خیلی تری شورای شهر اسم خیابون استفارات عربستان رو عوض کرده و الان اسم این خیابون شده خیابون آیت الله نمر همکار گرام با خب کلن همکار گرام چقدر شلوغ این چیز روند در ها اونجا چطور بوده همکار گرام همکار گرامی اینجا دوباره حمله صورت گرفت که دفعه اول تعداد حمله کنندگان کم بود بعد نیروی انتظامی دونه دونه رو عقب بشونه ولی در حمله دوم دیگه تعداد بیشتر بود و نیروی انتظامی هم عقب نشه هم یعنی چی وسط شهر مگه نبوده شر... پلیس هم که این همین نیرو داره اونجا عجیبه اه... همکاری که اگر... دیگه چی داری برامون از حواشی این حمله بگی هم کارو گرام منم یه چیزهای جالبی که دیدم ایشوت مم. علاقه حمله کنندگان به انداختن سلفی با قسمت‌های آتش گرفته یه سفارت بود که خب اه. خیلی پرطرفدار بود این کارم کالگرام. عجب یعنی چی مگه اینا متفرزین خشمگین نیستن دیگه سلفی انداختنشون چی آخه همکار گلمی من نیم فهمم بالا همکار گرام یه اتفاقا چون به صحنه‌هایی که من دیدم بعضیاشون خیلی خوشحال و خندان بودن همکار گرام خب فر اجازه بب... بده چی شو؟ الو. بله. همکار گرامی خوبی چی شده الو الو همکار بله الو. آخه من خوب خود بلد نیست باشم همکار گرامی ادراست من باید برام این برادرا من خواسته چند تا عکس یادگاری با این سوغدگی بگیرم ازشون چی میگی تو خبرنگاری همکار گرامی خیلی سد تا عکاس عکاس مجالس دیدی که نیستی که چیکار چی داری میکنی الو همه آماده؟ چی اومده همه بگن شیخ نمر برنامه‌گیرا ای باز این بلاشت خاموش ها اجازه بده الو خاموش حوالیه تو کار یا تو کما لیشیا ای بابا حسین نمی‌شنوه این صدای منو الو بله ولش کن حسین با تشکر از شما عزیزان تا شب ای دیگر و برنامه‌ای دیگر و سفارتگیری دیگر خدا هم نگهدار واسه من شده عکاس مجالس پسرخوی خلوچیل فکر کنم عروسی مروشی هم میره اینطوری ها چی دیوانه میکروفون تلا دمتگم در یه رنگ خورده سرهنگ حال کرده دمتگم فرشت خیلی با بود خیلی با حال بود این سرهنگ اندفت دمتگم ای بلا بچه حال کردم با این اکبر میکروفون طلا کلا اکبر کارش درسته دیگه ولی دیشب واقعا نرکت خفنی زده آدمش کم سرهنگ هم دیگه فازی که گرفت معلومه این کاره بوده دیگه آقا اصلا چیکار داریم ما گناه سرهنگ این مملکتو بشوریم؟ خیلی ممنونم از تماساتون متشکرم بهتون تبریک بگیم شما اگه سوژه لازم داشتیم واسه برنامه تون. از قرار نیست که امشب این سفرت عربستان تو تهران و محوطه ایت رو آتیش دادن رفتن کاغذ دیواریشو کندن پلاسه صفا دیگه صفا سی تی پی تی کجاش صفا سیتی آخه خیلی من از تماستون ولی حتما دیگه تا حالا شنیدید و میدونید که و هر حال یکی از واکنش های ای که به ادام شیخ نمر تو مملکت ما سورت این بود که خب سه سوته برادرها از در دیوار سفارت عربستان بالا رفتن و آتیش زدن و داغون کردن و بعدش هم اسم خیابونی که سفارت عربستان توی تهران توش بود رو کردن خیابون آیت الله شهید باقرالنمر نمر باقرالنمر و همین خاطره که ما خیلی امیدواریم که دیگه از این اتفاقا برای شخصیت‌های مرد علوغه نظام مقدس نیفته واچه کاری آقا، این اتفاق همینجوری بخواد بیفته وگرنه دیگه آقا تمام ها میشه اسم این عزیزان دیگه. مثلا میخواد به یکی آدرس بدی میگی داداش مثلا یا آبجی بیاد سر بشار اسد و... وسط خیابون سمت راست یه فرعی هست به اسم شیخ حسن نصرالله. این شیخ حسن نصرالله میای تا ته تا ته تا تهش ته ته گوندی میرسی به بزرگراه ولادیمیر پوتین. منتظر ببین وایسا قبل از اینکه به ولادیمیر پوتین برسی میپیچی چپ میرسی به کوی ها کوی حوسیات تهش میرسه به کوچه نوریال مالکی که البته قبلا نوریال مالکی بهم قبلا اسمش نوریال مالکی بود الان شده هیدر عبادی حالا آره همونجا زنگ سه‌وام بزنی مادر هوگو چاوز میاد بیرون شما البته یاد باشه مثل اوس محمود بغلش نکنی وقت سر میشه خلاصه نمیدونم ولی ظاهرا بعد آماده کنیم خودمونو. برای این اسما روی خیابونه دیگه دیگه چیکار کنیم؟ باید آماده کرد خود. آدم باید خودش آماده کنه برای همه چی این هم یه مدلش قابلی توجه کلیه مقامات لشگری و کشوری شرکت خدمات زده امنیتی آپاچی ها ولاگت با بیش از سی هفت سال سابقه درخشان در حمله گازنبوری به کنسولگری ها و تسخیر سفارتخانه ها در خدمت شماست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 آپچی ہاؤس دی به بجاۓ احزاب سفیر و کاردار و واکنش ہاوی کساولت آور با دشمنان خود انقلابی برخورد کرده و اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان نشان دهیم. شرکت خدمات زد امنیتی آپاچی ہاؤس دی خانم آقای این دختر خانم آقا به سرا حتما یادتونه تو ایران برای اینکه که فرهنگ سازی کنن و مردم کمتر رو توی خیابونه و مقابر عمومی بریزن این شعار شهر ما خانه ما خیلی مد شده بود یعنی هر جا رو نگاه کردی شهرداری شهر ما خانه ما نوشته بود منطقه این شعاره ظاهرا خیلی جواب نداد چون اصولاً خیلی از مردم توی خونه‌شون هم چیزی خیلی در قید و بنده ای که هر آشغالی رو ببرن توی سطل آشغال بندازن نبودن و خب مسلمه که تو خیلی از خونه ها اکثر بگو مگوها و دعواها سر این بود که کی آشغال ریخته و نمیدونم کی باید تمیز کنه و این حرفا توی شهرهای توریستی هم که اصولاً 80 درصد از شهرهای دیگه میان و برای همین وقتی این شعار شهر ما ما رو و میخونن، میخوان خیالشون راحت میشه که چون نه شهر خودشونه نه،, نه خونه خودشون با خیال راحت میتونن آشغال بریزن. خلاصه که حالا بگم این شعاره اصلا جوابگوی واقعیات جامعه ما نبود. بعدها مردم کم کم به نتیجه رسیدن که به صورت خودجوش باید نظافت محله خودشون یا لاقل جلوی خونه های خودشونو به عهده بگیرن و شعار زیبا و مجلسی شهر ما خانه ما جای خودشو داد به شعاره های انقلابی لعنت به پدر و مادر کسی که اینجا آشغال بریزد و ایشالله هر کسی اینجا دستشویی کند سنگ مسانه بگیرد و نمیدونم یا مثلا هر کسی اینجا ماشین بشورد ایشالله با ماشینش برود زیر 18 چرخ و از این جو اینه که درسته با این روش انقلابی کم اوضای آلدگی محیط شهری بهتر ممکنه بشه ولی خب یه اتفاق دیگه ای میفته اونم هم هم این همین دست نوشته های رو در دیوار شهر و کل آلدگی ایجاد میکنه دیگه. قول راجی بهش هم راجی به این مسئله آلرژی بصری هم فردا مفصل حرف می‌زنه. دل نگرانی ما از خود تاهی آدمی است که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. کامران ملکموتی سلام چه خبره؟ سلام فارسی جان سلام به همگی منم هم به سهم خودم از تولد جلال کمال تشکرو دارم کلا ما چش ولی نمیگم دیگه از طرف تو اومدم خیلی خسته شدم از طرف همه دارن ما چش میکنن نمی رسیم میخوام بگم مثلا شهرامینا رو بیفتن این کارو بکنن آره بچه‌ها میرن موت میکنن از طرفت <تصفح> تقسیم کار کن <تصفح> آره چه آره. خبر؟ فرشی جان امروز آره یه خبر تو اکثر سایت های سایتا پر ترین بود اونم پیوستن راوی اسکویی که ایرانه بیشتر تو کاره کومیدی دیدن هم تو کاره مهران مدیری به کادر سریال ساز شبکه جمه عجب عکس الامالا چی بوده با؟ طوری که دو خبر آمده بود فعلا سازمان و سازمان صدا و سیما و ارشاد حکم ممنوعکاری و اسقوی را صادر کردند بعد از چکامه چمن ماه و صرف طاهریان و مانی کسرائیان و بهمن مفید این پنجمین مورد ظرف یک ماه نیم پیش بوده که شبکه جم تونسته بازیگرها را از ایران جذب کنه بیکاری و بی پول بودن تلویزیون شرایط برای این کار البته فراهم کرده آجا پس بعد روزهای آینده منتظر اعلام اسامی جدیدام باشیم احتمالاً اصلا شک نکن مطمئن باش اما تا وقت است بزراجه به یک کار نمایشی موسیقیایی هم صحبت بکنم چه کاریه؟ از چهارشنبه سجاد افشاریان که مردم ایران با استندآپ کمدیاش توی خندوانه در حقیقت آشنا شدن و مطرح شد به همراه گروه کینگرام کاری به اسم اسکارلت دهی 60 رو توی برج آزادی به صحنه میبرن که در حقیقت اجرای نمایش کسی یا شب میمیره یا روز من شبانه روز نوشته خود افشاریانه این کار از 16 تا 25 دی ماه هفته سه شب اجرا میشه بسیار خوب میریم به اتفاق بخشی از همین کار اسکارلت دهی 60 رو از استاد را میشنویم و با تو هم خدافیزی می کنیم کامران عزیز تا فردا تا فردا خدا نگهدار این کوچه ها این خون ها خیابونا این تیر های بعد چه ما تهران بی خواب. ترشید ترشید فرشید فرشید سلام ان شاء الله گمشید بله بله بله فن و تو بابریه بچا شنامنده ها, ها هممون چاد و سلامت باشیم بهمون دورمی خوش بگذرید حامد دستم از دورتمو خیلی ممنونم حامد جان همین کلا همین دی همین هیچ دی خیلی متشکرم محیط زیست. خانم و آقایون همیشه اینجوری نیست که بریم تو دل طبیعت و یه جوجه کبابی بزنیم و بعد زباله هامونو همونجا ول کنیم و بریم این کار البته درسته که زشته اما در برابر بعضی از تجاوزهایی که به حریم طبیعت میشه خیلی معصومانه به نظر میرسه چون بخش اعظم آلودگی محیط زیست رو صنایع و کارخونه تولید تولید کنند که میخوان به ساده ترین و ارزون ترین شیوه ممکن از شر زایهات و پسمونده های خودشون خلاص بشن و توی این مواقع معمولا دیواری کتاتر از دیوار طبیعت بیچاره پیدانه میکنن اینجور کارخونه ها و صنایع معمولا طبیعت براشون شون حکمه سدل آشخال بزرگ رو داره اما بگم خبر خوب اینه که راه ها و قوانین سخت ایرانی زیادی وجود داره که صاحبین این صنایعه رو مجبور می‌کنه زباله‌های تولیدی خودشونو تو طبیعت ول نکنن ولی خبر بد هم اینه که راه ها و روش‌های خیلی بیشتری وجود داره که صاحبین این صنایعه می‌تونن این قوانین رو بپیچونن و دور بزنن و همچنان از طبیعت و محیط زیست به عنوان همون سطل آشغال برای زایئاتشون استفاده کنن ما فقط امیدواریم قبل از این که همین 4 تن اسبی جانوری ما هم منغریز بشن یا غر کنن به کشور اطراف پناهنده بشن این وضعیت بی سر و سامون هم سر و سامون بگیر و لاغل یه حال چهار تا جکو جونور بتونن با فراغ بال توی مملکت ما زندگی کنن پیش خوبی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اعلامی افتاب یAZ با نقل یک پیشبینی از یک مقام در اتاق بازرگانی ایران تیتر زده که کاهش قیمت نفت به کمتر از 10 دلار ده دلار بشک خلیج رو بین آهن زایاتیا بفروشن برای هر بشکه بیشتر از این گیرشون میاد که 10 دلار واقعا؟ هزارو روزنامه ی آرمان امروز به نقل از حمید رسایی در مورد ماسک زدن در مجلس تیتر زده که ماسک زدن اعتراض به دولت بود کلن ایشون با این دولت میسی مشکل داره زمان دولت قبل توی اوجه هالو دیگه هوای میرفته بیرون مجلس نفس عمیق میچشیده میگفت به احبه چه هوایی بس که دولت قبلی خوب بود روزنامه حمایت به نقل از دادستان کل کشور در نشست مشترک با پلیس فتا امروز تیتر زده که هر دوازده ثانیه یک نفر قربانی جرائم سایبری میشود شود. حالا خوبه پولیس فتا عوازش به همه چیز هست و هر دوازده ثانیه یه جرم سایبری اتفاق میفته عوازش نبود که که واویلا بود برمومه امشب هم تموم شد یه جای خوندم اگر هر صد میلیون سال از عمر زمین رو یک سال در نظر بگیریم زمین ما مثل یه آدم چهل و شیش ساله میمونه اگه اینجوری حساب کنیم میشه گفت از پیدایش ما انسانها روی کره زمین فقط چهار ساعت گذشته و از انقلاب صنعتی هم فقط یک دقیقه قسمت دردناک ماجرا اینه که ما تو همین زمان کتاه شست سانیهی برای چرخوندن چرخهای سنت و به قول معروف ساختن دنیای مدرن امروزمون با قطع کردن درختها بیش از نصف جنگل های زمین نابود کردیم مهاتما چه خوب گفته که نعمت های زمین برای ارزای نیاز تمام افراد بشر کافی است اما نه برای ارزای هرسو طمع ها شب و روزتون خوش از کوهای سرسلت تا از آنجا هاوی سر سبز تا داشتهای خالی از آج آسمانها تا خاک این هواهی شعر طبیعتی به کالهنج زندگی شد رنگین کمان هستی ام رنگ زندگی نشد آن یا آه شد در دست های تا جان بگیره دادم تا جان نگیره دستم بسیار دست اما زخم زدیمو جای انکاری دنیا نت رود نفس جاری است جای نرسانی زمین هکل با قهر زمین فرصت تکرار